امیر سلام الله علیه در اون جمله از وسیدنامه به فرزندش فرمود سرم از می شود اینی لما قد از می شود بلغت و سرم دیدم که عمرم به تعدید بنده زیاد شده و ازداد و وحنن دیدم که ضعف و ناتوانی در من زیاد شده ترسیدم که نکند بمیرم و ترسیدم که نکند ضعف روحی هم بر من غالب شود چنون که زعف بدنی غالب شده و مطالب مفیدی که به درد دین و دنیات میخوره بر تو نگفته باشم لذا عجله کردم و این وصیت رو برای تو گفتم که تو این وسیعت رو بگیری که سعادت دنیا و آخرت تو در او فرمود ترسیدم که بمیرم و ترسیدم که زعفی در امور روان من حاصل شود چون که در بدن من ظعف حاصل شده و یا اون که نه در من زعفی حاصل نشه ترسیدم که هوا و حب دنیا و فتنهای دنیا بر تو غلبه پیدا کند قبل از اینکه هوا و دنیا بر تو غلبه پیدا کند که مانندیش مانند شطوری، سرکش و تاغی بشوی که دیگه حرف حساب به قوله بنده سرت نشه این وصیتنامه رو برای تو گفتم فَإِنَّ قَلْبَ الْحَدَثِكَ الْعَرْضِ الْخَالِيَ قلب جوان مانند زمین خالی خالیست را که بریزی در او میپذیرد و لذاست که من این موعظه رو به تو کردم با ذرتو که ادب قبل ان یقص و قلبوش پیش از این که دل تو قصاوت پیدا کنه این موعظه رو کردم که به حال تو نافه باشه مطالبی راجع به این جهت در هفته قبل عد کردیم امشب این کلمه رو محتاج به شرح مختصری است این کلمه رو مخاطم عرض کنم که فرمود به این که از شاید می که فتن دنیا و شهوات بر تو غالب شود و نتیجتا قصاوت دل تو رو بگیرد و دیگه به تعبیر بنده حرف حساب سرت نشه و به تعبیر بنده می شود به این که مانند شطوری سرکش بشی و قلبت قصاوت پیدا کنه که دیگه موعظه و وسیعیت در تو اثر نکن یه شرح مختصری عرض میکنم کنم گرد که روایاتش الا در از و اقسام مباحث مختلف هست از می شود به اینکه وقتی آدم به روایاتی مراجعه میکنه کنه می بینیم مثلا فرد بگر به اینکه که می کسی که زهد کند در دنیا این بصیرت بس پیدا می کند کسی که زاهد در دنیا بو شود از از نشود خوشگذرانی ها و زر و زیورها از نشود اعراض کند این بصیرت و بینایی پیدا میکنه. خب می خدا میگه این مثلا چه ربطی داره بصیرت و بینایی با روح زود یعنی مثلا مثلا از میکنم از تشریفات زندگی انسان اعراض کنه های. از تشریفات زندگی اعراض میکنم ولی این چیکار داره به بسیرت و فهمیدن و درک چه ربطی به هم دیگه داره تو قرآن مفرمد اگه شما متقی باشید برای شما فرقان قرار میدیم. فرغان یعنی وسیله برای جدا کردن حق از باطل وسیله جدا کردن نیک از بعد خب آدم فکر میکنه تقوا چیکار کار داره به فهمیدن حق و باطل تقوا چه ربتی داره به تشخیص صحیح و غلط و امثال ای که چند تا شالان میخونم انشاءالله میبینه انسان این حالات و این صفات اخلاقی در درک و فهم انسان اثرد و این یک مطلب بسیار بسیار مهم تمام سعادت انسان در درجه اول بستگی به درک و فهم داره اگر من درک صحیح از چیزی نداشته باشم امید سعادت نباید داشته باشم وقت این آیه به ما میگه متقی درک صحیح داره ظاهد درک صحیح داره دیگران ندارن که حالا خونم بسیارش و این مطلب یه مطلب اساسی و مهم و توضیح زود و و مف... از دوشه از زود گذرش اینه که علما فرموده انسان دو جور درک داره چون که قبلا هم گفتم یه درک عقل نظری و یه درک عقل عملی عقل نظری معناش این است که چی صحیحه چی باطله اینو عقل تشخیص میده دو دو تا 4 تا عقل میفهمه صحیحه دو دو تا 6 تا عقل میفهمه باطله اینو بهش میگن عقل نظری یه تشخیص دیگر هم عقل داره عقل میفهمه که چی کاری خوبه و چی کاری بده چه چی چیزی حسنه و چی چیزی قبیهه یه رو به این جهت عقل عملی میگن که تشخیص حسن و حق منشعه برای عمله محرک آدم این کار خوبه پس بکن و اون کار بده پس نکن یه بین به این اعتبار میگن عقل عمل. عقل دو جور درک داره یکی درک از می حسن قب که اسمشو میذاریم عقل عملی یکی هم درک صحیح و باطل چه مطلبی درسته و چه مطلبی باطله این کار عقل صحیح و باطل حالا اون صحیح باطلش باشه چه چیزی نیکوس و چه چیزی بده چه کاری رو باید کرد و چه کاری رو نباید کرد این رو اون عقلی تشخیص میده که بستگی ها و ارتباط نادرست نداشته باش، اینکه همه شاید شنیده باشید خب بوشه یو امی و یوسن دوستی چیزی چشم و کور میکنه گوش و کر میکنه برچیه آدم که به یک چیزی علاقه داره به یک کسی علاقه داره عیباشو نمیبینه با یک کسی که بعد خوبیهاشو نمیبینه این بر همینه همین که خوبیهاشو ندید قهران ازش تشکر نمیکنه. کنه اگر بدیهاش رو ندید قهران از او دوری نمی کنه این ارتباط پیدا میکنه. خب و شی و یوسیم من عشق شیعن امیر المؤمنین میفرماید من عشق شیعن و امرز قلبه کسی که عاشق چیزی شود چشمش پوشیده میشه و قلبش مریض میشه کسی که عاشق دنیا باشه اونی که مطلوبشه میره دنبالش حیبش بگو دوست سه تا نخونم براتون ان شاء مطلبش واضح میشه از میخواست به اینکه الهوا الهوا ضد العقل هوا و هوت ها و خواهش این ضد عقل با عقل ناسازگاره جور از عرض می شود که در روایت دیگر همی بول من لم یملک شهوته لم یملک کسی که مالک شهوتش نباشه مالک اقلش نیست اختیار اقلش دست خودش نیست من مکرر مثال رو دادم به یه محسل بگو کار خوب برای تو چیه ازش ببون اگر در شرایط عادی باشه حرف حساب آلیش بشه میگه برای کار لازم ترین کار من است که وقتی از مدرسه اومدم بیشیدم تکالیفم و بیدویشتم درستامو آذر کنم مطالعه کنم مذاکره کنم این کارو خوبه که به درد من میخوره حاله ولی یه وقت میره تو خیابون یه منظره ای رو بینه، داره میر، کجا داری میری؟ تا که میگفتی کاره خوبه نستی مطالعه کنم بابا ول کنه هر فوق میری این الان عقلش نمیتونه کار کن من یم لک شه و ته لمیم عقل این مالک عقلش نیست و اینو رو مثلا از اینا شرح داره بزرگان فرمودن که هر یکی از خواسته ها و کمالات و قرائز انسان غلبه پیدا کنه بقیه قوا خادم اون می کسی که عقلش قوی باشه تمام قوا در خدمت عقل در میان. کسی که شهوتش قوی باشه عقلم میشه شه نوکر شهوت یه نقشه مقاد بکشه که جیگر این شهوت به نتیجه برست کسی که طالب ریاست باشه عقلش هم میشه طالب ریاست میخواد یه نقشه بکشه که چجوری بهتر رئیس بشه. یه عقل کجا؟ عقلی نمیمونه. این شاعرای ما مثل شیخ و اینا چرا یه همه روایات خوب حالیش میشده. جایی شعر میگن ولی هر عین خود روایت. از مشاد به اینکه شیخ سعدی ظاهرا میگه میگه اینکه بله یه حقیقت سراعیست آراسته هوا و گرد برخواسته نبینی که جایی که برخواست گرد نبیند بسر گرچه بیناست ما اگه یه جا گرد خاک شد یه کاری رو نمبینی. گچکاری سقف رو نمی بینی چشم اما نمی بینی. این هوا این شهوات، این خواسته ها مثل اون گرد و غباره نمیذاره چشم کار کن نمیذاره چشم کار کنه اللهم سلام